بسم الله الرحمن الرحیم ها سلام حرف عین از کجا تلفظ میشه چی یاد گرفتید بگید از وسط حلق از وسط حلق با نرمی اعا. اعا. اعا. مثل یعلمو بگید یعلمو افرید معلم معلم با حرف عین با نرمیه نبودیم یع. ساده نبود قطبشه. یعلم، یعلم، یعلم، معلم، رب العالمین. برخلاف حرف حمزه که ساده میشه حرف عین ساده قطب نمیشه نرمه. یاد بدیم یعلم، معلم.